مواده به گروهی بروی و در روز قیامت در جوابی الله ناتوان بمانی. هنگامی که از تو سوال شود چرا جنگیدی؟ و بگویی در راه تو پس الله بگوید دروغ گفتی. بلکه برای تعصب و برای شهرت جنگیدی. پس بر حذر باش و دقیق انتخاب کن. في المر روني تلقى في تل المعاني وسبدني بالكف مصحف ورا الشاشي سليني سيف البطولة يا من صلت بماني كل المنايا بكاف في المر روني تلقى في تل المعاني وسبدني. بالكف مسحف ورشاشي سليني سيف البطوله من صلت عهدا علينا اسود العرين حق, حق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 اینها ها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند. خواسته الله بود که ما پشت کردیم، گشتیم، با استازه هاش ناشتیم، با جای مختلف هاش و دیدیم، شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره آخره با به توفیق الله تعالی ما به رسیدیم. این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید. جمع شب ها از رادیو صدای خلافت.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 گل های گل شما میخواهید که رادیو صدای را بر ببرید؟ برنامه فکری تعلیمی و تربیوی. اگاه با دختارگاهستری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر من بگوی که کدام کدام داه یاد داری؟ داینم خوردن دعا از خوختند کردن اینها اطفال شعران خلافتند اینها آیندهی درخشان خلافتند پایام برضایی است بین به خلافت که بیان اسلامی و از گناهان تو بکنند بله بله اینها گل های خراسانند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 بلغوا حضرة المولى الإماما ورفعوا راياتنا درجة جوي حق وسلاما اشرق النصر على های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکات یک بار دیگر شما را به برنامه در جستجوی حق خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته میزبانی ما عبا مسلم خراسانی و برادر گرامی ما عبدالرحمن روحانی را بپذیریم خوشحال هستم که باز هم در این برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم امیدوارستم هستیم که جمعه خوش را سپری کرده باشیم خب برادران گرامی فکر میکنم که روحانی صحیب در این برنامه باز هم کدام مطلب را میخواهد به خوانش بگیرد بله ما هم به نووی خود سلام و احترامات خود را به تمام مسلمانان جهان که در هر گوشه و کنار استند تقدیم میکنم میخوام که در این برنامه حکایت یک مجاهد را تقدیم میشه کنم ابو زبیر الجذابیری مشهور به ماهر مشعل. از رسانه ها تا به جهات فی سبیل الله ماهر مشعل تولدش در سال 1410 هجری قمری در شهر قسیم شده با سن 14 سالگی رسید علاقه مندی زیاد به کار کردن در رسانه ها را داشت به این فکر به دنبال هدف خود برآمد بالاخره مدت زیاد در رسانه ها کار کرد و او میگوید ای برادران به الله قسم زمانی که به این هدف خارش شدم آن سعادتی را که حالا در صحات جهاد یافتم نیافته بودم ای برادران قسم به الله آن خوشبختی را احساس می کنم که بجز الله عزوجل دیگر کسی آن را درک کرده نمی تواند رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید آرزو دارم که در راه الله بی جنگم و کشته شوم باز بی جنگم و کشته شوم باز بی جنگم و باز کشته شوم زمانی که بنده کشته می شود الله تالا خود روحش را قبض بکند می میرد در حالی که شهید است از الله کریم ربی عرش بزرگ می خواهم که بر من شهادت را احسان کند و ای میگوید ای برادران به الله قسم قبلا من در آوازخوانی بسیار مشهور بودم همگی مرا می شناختند فرق بزرگ است سبحان الله هر چیز داشتم اما چیزی که نداشتم خوشبختی بود قلب فراخ دور از هر نوه تشویش مگر از وقتی که در سرزمین جهاد آمدم در قلبم هدایت و ثبات بیشتر پیدا شد و از الله تعالی میخواهم که در این راه برای من ثبات را نصیب کند بلا قسم ای برادران خوشبختی را احساس میکنم که بجوز الله کس نمیتوان آن را درک کرد درست است که زندگی بالای خاک دارم خودم به خود غذای ساده درست میکنم و میخورم لیکن به الله قسم قلبم مملو از سعادت است قلبم طوری فراخ و باز است که جز الله تانا کسی آن را درک نمیتواند یکی از دوستان ماهر مشعل میگوید قبلا با ابو زبیر در الجزیره معرفی شدم تمام تلاشش برای شعر گویی بود تا اینکه الله بالایش در هدایت مننت گذاشت او را هدایت کرد و آمدیم به سرزمین جهاد عجیب این بود که کسی که تلاشش برای رسانه ها و شهرت طلبی باشد به با یک بارگی تلاشش تبدیل به ملاقات الله عزیز شد قابل یاداوری است که به طلب شهادت بسیار حریص بود در بین مردم شام بسیار شخص غیور بود الله متعال توفیق خدمت دین را زیاد برایش داده بود و در بین همه برادران بسیار دوست داشتنی بود همیشه برادران او را به خوبی یاد می کردند محبتی وی همه برادران را فرا گرفته بود برادر ماهر مشعل می گوید رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید سیاحت امت من جهاد در راه الله است پس من الحمدلله در سیاحت استم به هر طرف سیر می کنم و لذت می برم بلکه آرزو دارم بی جنگم و کشت شویم یقینا که تمنای کوشته شدن را در راه الله دارم یکی از دوستان ماهر مشعل در ماهر مشعل می گوید سبحان الله برادر ما به شهادت بسیار حریص بود تا این که بارها با کسرت از امریات استشادیات می کرد و بسیار طلبگار این عمل بود الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفاقر ماهر مشعل میگوید: و پدر و مادرم پیامی من این است که صبر کنید، صبر کنید. به الله قسم که جهاد در راه الله لذت زیاد دارد. صبر کنید. به علاقه که من احساسی بسیار خوشی دارم شاید زیادی برای من بگوید که چرا مادر و پدرت را ترک کردیم اما این را بدانید که جهاد امروز بالای هر فرد مسلمان فرض انگشته به هر چیزی که امکان دارد باید دشمن را دفع کنیم باید هر مسلمان آمادگی بگیرد به علاقه سم ای برادران زمانی که عقیده در قلبت راسخ شود باز عظمت جهاد را می دانی. ای پدر ای مادر، کسی که بیکشد و کوشته شود در راه الله هفتاد نفر از زهلش را شفاعت می تواند. آیا شما نمیخواهید که برایتان شفاعت کنم؟ پس از الله میخواهم که مرا قبول کند و از من راضی شود. الها یا رحمان یا رحیم یا غفور یا کریم مرا قبول کن به حیث شهید و از من راضی شو، به الله برادران، به جز شهادت در راه الله دیگر اراده ای ندارم، به قسمی برادران، الله از قلبی من آگاه است، من اراده شهادت را در راه الله دارم دوست ماهر مشعل میگوید. آخرین شب ملاقاتش همراه من بیادم است، شبی که به سوی غزوه می رفتم، میشی تابید به سوی ملاقاتی الله از سبحان الله احساس میکردم که امشب شاید باز دوباره زنده نیاید همین بود که خبر شهادتش به من رسید تقبله الله خلاصانیسی فکر میکنم با کدام برادری که در جستجوی حق شده و به حق رسیده نیست داری نفته صحبتی داریم نه؟ بله باز هم با یکی از برادران صحبتهای داریم میریم و تقدیم شنوانده ها میکنیم لن را هذا ول ذاکا و ذاکا بر را دولت الحق هناك یا ابا بکر الحسینی فهکا مدة الأيدي تبايعك إماما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر مجاهد شوام بيش اخوض برامو معرفي قنين الحمد لله القبيل المتين بيس رسوله بسيف رحمة للعالمين اسم ابو بكر اسم اتولاد الاغمان بخلافات اسلامي تومن حيث اك فرد نجا افاي وزيفان امان جزاك الله شما گفتین که از لغمان آمدین به خلافت اسلامی شما تحصیل هم کردین بلی سنفسی پانتون به بخش شریعت سنک ماشاءالله شما فسنفسی شریعت هم خواندین و بعد او آمدین به خلافت اسلامی چطور بعضی مردم خود تبلیغات میکنن از تاریخ رسانه ها و از طریق تلویزیون ها و رادیو میگن که خلافت به نام داعش معرفی میکنن و یا بعضی شبهات دیگه ای را ایجاد کردن از جان جوانارا مخشوش ساختن شما چطور برای خلافات خلافت می کم شک و شکو که داشتین یا خیر بله شک بود اینجا پرا که د جای میلییا کار میکنه و خصوصا در جایهایی که یا خودشان حاکومتی بیشتر دارن اونجا کار میکردن او شک داشتیم و بالاخره ما آمددم د اینجا نلااح من جایدهه که دیدم باید زندگی ای کردیم الحمد و شکی برداشت و ای و و ای الله او شک که داشتمون بردشته شد والا شک نیست اناءاللهی خلافت است ال من حاج نبوعه و این یا حکم شد نیز بزنله خب برادر شما، قبلا در لغمان یا در کدام ولایت دیگه که زندگی میکدین در اونج شما شک داشتین بالای خلافت بعضی شبهات را که رسانه های کفری ایجاد کرده بدن باز از کدام طریق شما فهمیدین که خلافت بر حق است بلی ما زمانی که در اونجا بودیم خو میدیای دجالی کار میکرد از طریق نشریات و تلویزیون بنامره شوبات حکومت یک دانه طفل و فلان کردن بستان کردن بالله حرمات زمانی که رادیو الجزیره به نشر شروع کرد لای هم ما تونسیم که تا رادیو ما جستجو کنیم لای هم فهمیدیم که واقعا خلافت حق است و ما تستزی الحمد لله شما از طریق رادیو اما بعض شوبهات پس تانستین که رد کنین و بیاین به خلافت، چه احساس دارن فعلا از خلافت الحمدلله فعلا بسیار احساس خوب دارم و اینجا هر مجاهد معازات و هر مهاجر من فی للالحمد از نپرسانات منی حتی ما که زمانی که در مراکز می نفت نشارا از ما ریش پرسان میشد ریش دار اول اینج میبینیم که الحمدلله از هند آمدن از چین آمدن از تاجیکستان آمدن و هر کس آزاد است و هیچ کس برش کن تو کجا کجاست تو تو کجا نیست تو توت تسکریت بیت الحمدلله که یقینا خلافت خوب برادر شما کاروبار آزاد میکردن قبلا بلی ما کاروبار در بخش انتشارات و قراضه سفریشی و کتاب فروشی بودک در اونجا کار میکردم و زمانی که ما خلافت از طریق رادیو شنیدم همه چیز را با خاطر رب العالمین گذاشتم و آمدن در صف مجاهدین ما شاء الله آل چی احساس داری امو پول و دارایی و دوکان همه چیزه که رها کرد آمدین احساس خوب داری ازو بله الحمدلله این همه چیز در باور نعمت الله یک, یک زرم با ما اردش نداره ولیلی همه ایر رحا کدیم آمدیم خب ماشاالله این جوانای هایی که در شارا یا در بعضی جای زندگی میکنند و بعضی ملاها اونا را فریب میتند ملاهایی که امروز در صف دجال استاده هستن. به ازی که اینا درمو رس دمو دولت تاغوتی مرتد کار میکنند فعلا بردمی جوان ها که فریب از این ها را خوردن یا فریب بعضی رسانه های کفری را خوردن بارشینش چی پیام داری خدا؟ پایام و با کش و خودشان بیاین و جستجو کنن و هر شب که دارن این خلافت به هر کسی که در دوایر دولتی هم است خلافت برایش میگه که بیای اینجا ببینه بی و از سو که اونجا هستن و بنامی که ما دعوت میکنیم و تبلیغ میکنیم و به سوال کردیم حتی زمانی که گفتیم به صورت عالمی که مشهور است گفتیم که جهاد فرض است من یه تونایی میشوارد چه مراضا و با تو سخنها باز شدن تو میخواییست ایراسار و ایران کنی کسی که سرزمین مراضا میساعت میکند ولی وی گپ میزد و ما بازش میگیم که در از اولامای سو از کیادی آن شنا و خودشان بیاین و اینجا ببینن و انشالله حقش کرد. و قل جا الحق وزهق ان الباطل كان شما ده اشارات دوستا یا رفیقای خاصه داشتین اونا چطور هستن مونی بستن می به طرف خلافت میا خیر نه انشالله شاء الله الحمدلله ما داریم و ان شاء به فضل و کرم الهی آمدنی نیستن انشاءالله شاء الله به فرصت ان به خلافت میبایمندن و انشالله ای الله این بیرق هرگ بلند میکنیم باذن الله ما برای داری خدا با کفار میلی میگم ایک کفار که مثال مرتدین افغانی هستن و غلاما هستن کسیش که در اردو پولیس ویمانیت کار می باز هم خلافت برشن وقت میتا وقت وقت وقت برشن و بیایی نیو توبه بکشن اگر نه انشاءالله ما مادینستان بازمشان شاید کنم شاید کنیم بازمشان شاید و به این حکومت مرتد پاکستان و فیلن که بنام آیسای سابق امارات به دوما جهیدینی که در امارات سن بیساری شمه میشناسین و ما سابقم در امارات دست داشتیم به خاطر لله الله میجنگیدن جنگیدن پیغام ما اس که بیا این و ای خلافت و عبد الله الذين امنوا منكم وعامل صالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم امروز آمد علی منهاج قرآن و سنت و بیا این دین جوایز ببینن و این ای نظام های مثال به حکومت پاکستان ما میگم که ان شاء الله و ان هستیم فرصت می که یہ چ چهای ان ان ماذن شوما ميا ان انشاءالله الله اسلام الله ان الله جزاك الله خير هذا الحق <سؤال> هناك يا ابا بكر الحسيني فهكا مدت الایدی تو با یعکا اماما, اماما. خب شنوندگانی عزیز شینیدین که برادر مهاجر و مجاهد ما در جستجوی حق شده و به حق رسیده بود و به نظام اسلامی آمده بود و از این نظام اسلامی و خوب رازی بود به همین طور ما هم رسیدیم به پایان برنامهی در جستجوی حق ناگذیر استیم با شما شنوندگان عزیز و گرامی لاحفظی کنیم تا برنامهی دیگر که باز هم با یک برادر به حق رسیده هم صحبت میشویم همه شما را به اللهی وحيد لا شريك مسبوريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغوا منا بابك السلام بلغوه حضرة الموال الإمام.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 ادعا میکنه که و تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبان طغوتا دوست داشته باشد یا زبانم تاغوت طغوتا تعریف میکرد باشد یا همان از طغوت اطاعت میکرد باشد از جمله نواقص کلمه از جمله‌ی نواقص ایمان این برنامه را شب شب ها و چهارشنبه به شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید فطمبا الى الريكه فلا بقاء <تصفيق> گفتنی ها و ناگفتنی ها دیار غربت تاریخ هفت جمادی الاول سال چارده هجری گوینده ابو علی ادهم قسمت ای مادر ولی آن چیزی را که تو در ذهنت برای آن نوزات دیروز می آن چیزی نیست که این تا رو آن تا فکر کردی ولی امروز آن آوان مبدل بر زمان دیگر و آن فکر مبدل بر فکر دیگر تو در یک فکر رو طرز اندیشیدن و نوزات که سی سال عمر بود دارد و او با دیگر طرز فکر و برنامه فرا آن تصور که تو در ذهن داری پس این بود داشته هایم ولی با آن هم خود را متهم می دانم چون شما هم متهم می دانیم شما محبوب هستی ولی حق و رسالت محبوب از شما با آن هم در روزگاری که در جوارتان بودم و وجودتان را لمس می کردم به این با نیتفلیم نه به یک انسانی که دارای رسالت است حقی که بر من بود تا من در حق شما می رسیم ولی نرسیدم و کوتاهی نمودم واقعا مشکل است رسیدن به حق مادر حق مادر بسا بزرگتر و سنگینتر تر از ولی باز هم خیمه مهر و صفاعت را بر بساط زندگی پهن و بگسترانی دی و از همه داشته های مادی و معنوی را برایم فراهم نموید از تربیه سالم انسانی گرفته تا به کودکستان مکتب و دانشگاه قدم به قدم همراهیم کردی جهت هم و استقامت و پایداری بخشیدی همه و همه از الطاف تو بودو همه و همه از مهر و صفای تو بود هر هرچی که من بگویم هر هرچی که بنویسم قلم ها بخشتیم و کاغذ ها پر شد ولی کارنامههایت در حق اولادت خاتمه نیاد باز هم من متهمم در حق تو نه در حق دیگران و باز هم ميدان كشم كش ها ها در این میدان کشمکشها و مجادلهها كش و ها تو یک گام جلوتر انداخته و در کشاکشها و مهر محبت و و شفقت با دادن یک نیایش یک دعا در حق پسرت رسالتت را به نمایش گذاشته و دین یک مادر واقی را عدا نمودی اما پسرت در این كش ناکام و بازی این تعامل انسانی را به سمت خود چرخاند و تو رسالتت را در حق اولادت ادا نموده پسرت را باز مدیون و این کشمکش ها ساختی بلی باز هم مادر من متهمم تو بری و کامیاب و کامگار ولی از نظر ایدیا من مجرمی پیش نیستم نه تنها که تو در پی گرفتاری هم هستی بلکه همه و همه در پی اصارتم است ما پیش همه متهمیم و این اتهام این مسلمان بودن ما است مثل که اصلاف ما متهم بودن رفتن کسانی که در مسیرشان قدم میزنند، آنها هم مجرمین و مضمونینی هستند که همه در پی گرفتاری و اصارت ایشان هستند نه تو مادر میخواهم در آخرین صفحات این چند حکایتی داشته باشم از یک دزد ماهر میگن روزگار دزدی بود ماهر و فنی و تجربه کار که سالها را در این پیشر گزرانیده بود روزی از روزها این دزد ماهل و تجربه کار خود را در حالت پی دی می و در فکر می افترد. تا این پیشه و هنر دزدی را و میلاس به سر خود در بیارد و پسر سر خود را از مهارت های دزدی و نحو دوزی پنهان از انذار مردم آگاه بسند بالاخره سخن کوتاه هر دو پدر و پسر در حرکت می شوند تا جایی را بدزدد وقتی به جای موعود می پسر خود را در بیرون از مکان دزدی ایستاده و خود شروع به دزدی می کند و برای پسر خود می گوید که اگر کسی آمد و مرا دید برایم صدا کن تا من خود را از انظارش پنهان کنم وقت دوزد بزرگ پدر است مصروف دیدن می شود پسر کچنوگکش صدا می زند و پدر, پدر پدر پاسخ می دهد چرا چی شده؟ پسر در پاسخ مجدد برایش آواز می دهد کسی تو را نظاره می کند پدر صدا می زند و می گوید مارا کی نظارگر است پسرک صدا می زندت و می فرماید آن ذات که بسیر و بینا و شنوا است و از کارهای آشکار و پنهان شما آگاهی دارد بلاخره دزد بزرگ که در فرهنگ زندگی مسالمت آمیز نقش یک پدر را ایفا می کند در پیشه یک دوست ماهر است به حیرت و تعجب افتاده به نکته عجیبی پیمی براتو از کار دوزدی و آموختاندن فند دوزدی برای پسرک خود اجتناب کرده و زندگی را مجددن در فضای کامل انسانی مملو از مهر و صفا و صدق و اعتماد دوباره شروع می کند ای مادر این واقعه قصه نیست که تنها لحظات ما با خواندن آن بخندیم لبگشایی کنیم بلکه این یک واقعیتی است که بازگو کننده اندیشه‌ها و پندها است مثل شاعری میگوید که عقلان را یک کلمه کافی است تا بدانند مراد این آن چی است با امید شنیدن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 شما را به الله عز و جل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.